داستان دختر تنبل یکی داشت یکی نداشت در زمانهای قدیم در سرزمین گوسفندهای پروار و شطرهای دکوهان زن ریسنده یک دختر داشت اونها در خونه محقر زندگی می کردند. دختر زیبا بود مثل پنجه آفتاب اما تنبل بود و تن به کار یه روز که مادر از دستش حسابی عصبانی شده بود اونو به باد کتک گرفت. اتفاقا در همین اسنا ملکه با کالسکش از جلوی خونشون میگذشت که صدای گریه دختر رو شنید. او دستور داد کالسکه رو نگه دارند و بعد از کالسکه پیاده شد و به در خونه اون زن رفت و گفت زن چه بلایی سر این دختر بیچاره آوردی؟ صدای گریهش جاده رو برداشته؟ مادر خجالت کشید که بگوید دخترش رو به خاطر تنبلی به باده کتک گرفته برای همین گفت بانو بس که نخ میریسه دمار از روزگارم رو درآورده در آخه من بی نوام. این همه پشم از کجا بیارم که او شب و روز نخ بریسه؟ ملکه گفت من که عاشق صدای چرخ نخریسی هستم این دختر رو بده با خودم میبرمش قصر. یه آلمه پشم شطر و گوسم میریزم جلوش. تا دلش میخواد پشم بریسه مادر از خدا خواسته دختر را به ملکه داد و ملکه اونو با خودش به قصر برد توی قصر سه اتاق پر از پشم وجود داشت ملکه اونها رو به دختر نشون داد و گفت وقتی همه این پشم را رسیدی میشی عروس خوشگله خودم ملکه اینو گفت و سپس دختر را با این همه پشم تنها گذاشت و رفت دختر شروع کرد به گریه او که نخریسی بلد نبود اما بعد اشک‌هاش رو پاک کرد و شروع کرد به آواز خوندن روز سوم وقتی ملکه به سراغش اومد شروع کرد به گریه و گفت که از غم دوری مادرش نتونسته کار رو شروع کنه ملکه عضر اونو پذیرفت و تا فردا بهش مهلت داد که کار رو شروع کنه وقتی ملکه رفت دختر با اوقات تلخی به طرف پنجره رفت تا سرگوشی آب بده که دید سه زن به طرف پنجره او میان. یکی از اونها پاهای خیلی بزرگی داشت دومی لب پایینیش چنان بزرگ و آویزون بود که اون رو زیر چونهش انداخته بود سومی انگشت شستش خیلی بزرگ بود اونها به زیر پنجره رسیدند و ایستادند و از دختر پرسیدن اونجا چیکار میکنه؟ دختر هم سرگذشتش رو برای اونها تعریف کرد و گفت که در چه مخمسه ای گیر کرده. زن گفتند ما حاضر این پشم رو برات بریسیم اما شرط داره. دختر گفت چه شرطی؟ گفتند به شرط اینکه ما رو عمه خودت معرفی کنی و به عروسید دعوتمون کنی. دختر گفت با کمال میل بفرمایید داخل کار رو شروع کنید زنها داخل رفتند و شروع کردند به ریسیدن یکی ایستاده بود و چرخ را میچرخوند دیگری نخ رو با آب دهانش خیس میکرد و سومی اون رو با انگشتش میپیچید اونها در عرض سه روز همه پشمها رو کردند و موقع رفتن به دختر گفتند پراموش نکن که چه قولی به ما دادی روز بعد وقتی ملکه پیش دختر اومد و دید که او کارش به درستی انجام داد به قول خودش وفا کرده و او رو برای پسر بزرگش خواستگاری کرد بهزودی مقدمات عروسی فراهم شد داماد از اینکه عروس به این زیبایی و زرنگی نصیبش شده بود از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید مهمانان زیادی به عروسی دعوت شده بودند از جمله عروس عروسخانون شب عروسی وقتی سه زن ریسنده وارد مجلس شدند داماد از شکل و قیافه اونها تعجب کرد و از عروس پرسید: عزیزم، چرا اماهات این شکلی دختر گفت: بهتره از خودشون بپرسی. داماد اول سراغ زنی رفت که پاهای پتوپهن و بسیار بزرگی داشت. پرسید: چرا پاهات اینقدر پتوپهن؟ زن آهی کشید و گفت: پا داشتم مثل پاهای عروس خانوم ظریف و مورد شور این چرخ نخریسی رو ببره بس که پاش ایستادم و چرخوندمش پاهام به این روز افتاد. داماد از زن دومی پرسید چه بلایی سر لب پایینی تو اومده؟ زن گفت دست رو دلم نزار که خونه. لب داشتم گنچه درست مثل لبهای عروس خانون بس که موقع نخریسی نخلی زدم به این روز افتادم و زن ثومی هم گفت که بس که نخ رو دور انگشتش پیچیده انگشتش دراز شده و لا انگشت داشته مثل انگشتهای عروس خانوم کشیده و زیبا با ناخونهای بادومی شکل این گفته ها زنگ خطری بود برای داماد که اجازه نده زن زیباش با نخ ریسی خودش رو از شکل و قیافه بندازه و برای همین وقتی پیش عرز خانم برگشت گفت عزیزم از فردا نخریسی بی نخریسی. اما عرز با ناز ادا گفت نفرمایید من نخریسم و اگه نخ نریسم میمیرم. داماد گفت عزیز دل سرگرمی های دیگه ای هم هست مثل اسب سواری، موسیقی، گردش، تفریح و هر آنچه که دلت بخواد. زنهای ریسنده که شاید این گفتگو بودن گفتند، امه جان نگران نباش، ما هم مراتب میاییم و به سر میزنیم تا واسلت سر نره. عروز شونش رو بالا انداخت و گفت حالا ببینم. لابود خاننده گرامی شما هم مثل من داری به این فکر میکنی که گاهی کتک مادر چه موجزه ها که نمی‌کنه.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 همه و همه و همه در کانال تگرامی هزار افسان داستانهای های افسانهای سری مهران دوستی،